سلام ای شب معصوم، سلام ای شبی که چشم های گرگ های بیابان را به هفره های استخانی ایمان و اعتماد بدل می کنی و در کنار جوی بارهای تو ارواه بیدها، ارواه مهربان تبرها را می بوین. من از جهان بی تفاوتی فکرها و حرفها و صداها می آین. و این جهان بلانه ی ماران مانند است و این جهان پر از صدای حرکت پاهای مردمی است کمچنان که, که ترامی بوسند در ذهن خود تناب دار ترامی بافند سلام ای شب معصوم یان پنجره و دیدن همیشه فاصله است چرا نگاه نکردم مانند آن زمان که مردی از کنار درختان خیست گذر می کرد. چرا نگاه نکردم انگار مادرم گریسته بود آن شب آن شب که من به درد رسیدم و نطف شکل گرفت آن شب که اسفهان پر از تنین کاشی آبی بود و آن کسی که نیمه من بود به درون نطفه من بازگشته بود و من در آینه می که مثل آینه پاکیزه بود و روشن بود و ناگهان صدایم کرد و من عروس خوشه های عقاقی شدم انگار مادرم گریسته بود آن شب چرا روشنایی بیهودهی ای در این دریچه مسدود سر چرا نگاه نکردم تمام بوسه ها و نوازش ها که دست تو ویران خواهد شد و من نگاه نکردم تا آن زمان که پنجره ساعت گشوده شد و آن قناری غمگین چهار بار نواخت چهار بار نواخت و من به آن زن کوچک برخوردم که چشمهایش مانند لانه های خالی سیمرغان بودند و آنچنان که در تحرک رانهایش میرفت رفت گویی به کارت رؤیای پرشکوه مرا با خود به سوی بستر شب می برد.